با مدعی مگویی اصرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی عاشق شوهرنه روزی کار جهان سراید ناخند نقش مقصود از کارگاه هستی دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم با کافران چه کارت گربت نمی پرستی سلطان من خدا را زلفت شکست ما را تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی در گوشه سلامت مستور چون توان بود تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی آن روز دیده بودم این فتنها که برخواست که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی اشخت به دست توفان خواهد سپرد حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی